اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام نبینا و عاله خدمت فدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر خیر عرض میکنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید بحث ما در تقسیم انشاء به طلبی و غیر تلبی و مباحثی که در این خصوص بود تمام شد یعنی واقعا اینقدر مثال زدیم که دیگه خود ما هم از این مبحث خسته شدیم بعد وارد نموزج ها که شده بودیم چندتا تا نموزج رو حل کردیم یه سه باقی موند اونها را حل کنیم و وارد اولین قسم انشا قای طلبی یعنی امر بشیم که مهم است قال زهیر بن ابی سلما نموزج پنجم و قال زهیر ابن ابی سلما زهیر ابن عبی می دونید که این شاعر جاهلی است حتما از اون شعر هم خوندید درست نگاه کنید پایین. میگه و الصلاسطل مقدمین یکی از سه تا شاعر پیشتاز الا سایر شعرا الجاهلیه بر بقیه شعرا الجاهلی یکی از سه تا پیشتاز هاست و هم اون سه تا پیشتاز شعرا الجاهلی اینن و هم زهیرون و امروال و نابغه زهیق است و امروال غیسه است و نابغه ایسته تا شاخص شوهرهای جاهلیه کان لا و آزل و فی کلامی قلم به سلم به صحبت نمیکرده در کلامش کان لا و آزل فی و کان یتجنب و وحشی از شعر و از های وحشی شعرهایی که ناشنا باشه نشه بفهمی مبهم باشه اجتناب میکرده الا و, و هیچ کسی را مهد نمی مگر به همون خصوصیاتی که در او بوده و کان یوز ربا به هل فی تنقیه شعر از خصوصیت بارزش اینه که زربون مثل است در تحذیب و تنقیه شعر یعنی شعر رو ویراستاری میکرده شعر رو که میگفته همون لحظه اول نمیداده بیرون حسابی اون را چکشکاری میکرده تنقیه حتی سن میاد بل به یاد تا جایی که قصاید او اسمش رو گذاشته بودن حولیات حول یعنی سنه سال حولیات یعنی سالیانه ها. چرا بشم میکنن به قصایدش سالیانه؟ بدنی که یه شعر میگفت یک سال اون رو بلا پایی میکرد میخوند تغییر میداد درستش میکرد بعد از یک سال شعر رو میداد بیرون لانه کان کانه یه عمله لقصیدته زیرا او یه قصیده رو میساخت عمل میکرد بهش ثم یعخوز و فی تنقیه ها و عرضها ها علی شعرها سپس شروع میکرد یعخوز یشت ها سپس شروع میکرد در تنقیه اون در چکشکاری اون بعد هم در عرضه کردن اون قصیده بر شعرهای دیگه فی سنت این کامله در تهیه سال از این اون مشورت میگیره و از شعرهای دیگه خودش تنقیهش میکرد بعد از یک سال یه شعر پخته میداد بیرون خب پس بنابراین این این آدم شعرش و معلقش یه جایگاه خاص خودش داره مکتبی دارد به اسم حولیات خب این آقای زهر چی میگه؟ میگه نعمه امرعن امرعن تمیزه فایل نعمه یه حووز دوش مستطر برمیگرده به این امرعن یعنی چه مردی؟ چین حرم, حرم ابن علام که یکی از اون کسانی که متشون کرده که این حرم ابن سنان درست شد و یک نفر دیگری که متش میکنه درست شد این دوتا توی جاهلیت دوتا تا قبیله رو با هم آشتی دادن و دیه کشته شده هاشون رو دادن صلح ایجاد کردند، این دو نفر مت حالا رو مت میکنه حرم ابن سنان نعم امرعا حرمون خب تا این موقع که اینو حرم مخصوص به دیگه تا موقع که اینو نگفته بود مدهی نشده بود حالا که گفت مده شد ارشای غیر طلبی لم ارا یعرو یعنی عرزه آرز شد لم تأرو نائبتون میگه به چه مردیه حرم ابن سنان. زیرا هیچ نائبه مصیبت، هیچ مصیبتی آرز نشده الا مگر در حالی که این وابا به حالی است مگر در حالی که و کانه لمرتا به وزرا مگر اینکه کان این آقای حرم اسم کانه خوبه میخوره به حرم مگر اینکه این آقای حرم کان وزرن یعنی مؤیلن این یارو یاور بوده لمرتا به ها مرتا یعنی خواهف به کسی که میترسیده از این مصیبت میگه هیچ مصیبتی نیومده مگر اینکه که این یاور اون کسی بوده که در معرض این مصیبت بوده و از این مصیبت میترسید هیچ مصیبتی آرز نشده در هیچ حالتی مگر در حالی که این مهم بوده نسبت به اون کسی که در معرض این مصیبت بوده یعنی این یک آدمی بوده یار و یاور نعمره هرمون پایین هاشیه نگاه کنید میگه که لم تعرو لم تعرو اون لمشو بذارید یعنی لم تنزل ولی اگر بخواید اینطوری باشه باشید تعرو یعنی تنزل واقعشو باید بنیمیسه چونی واقع به جزمی افتاد ولی مرتا الخائف کسی که میترسه الوزر الملجه پناهگاه معین خب یمده ها حریم ابن سنان حرم ابن سنان رو مد میکرده به انه ملجه یعنی موئید اون موئین و پناهگاه و یاور بوده به ملجه و کل خائف و قیاس و کل ملحوف و یاور هر کسی بوده که محزون بوده ملحوف یعنی محزون قیاس اون بوده یعنی دادرس هر کسی بوده که غم به دلش می آمده و موئین و یاور هر کسی بوده که می ترسیده از مصیبت که سراغش بود. خب این هم نعم امرهن حرمون انشاء غیر است تو از نوع مده بعدی رو ببین امر غیس سه تا سلامت جاهلیه دیگه این هم میگه اجارتنا جاره یعنی همسایه همسایه موننس خانم همسایه میشه جاره جار جاره او همزه همزه نداست هجارتنا یعنی ای خانم همسایه ما ای مجاور ما انا قریبان ها اینم این هم جوابه ندا گفته منو تو اینجا قریبی خب حالا اگه قریبیم چی؟ میگه و کلو قریبین دل غریبه نصیب نصیب یعنی فامیل نسبت دارد. میگه و هر غریبی فامیل قریب دیگره من و تو اینجا غریبیم ها پس بنابراین من و تو با هم خیشابندی داریم مثلا توی یه کشوری که حالا اروپایی غربی هست شما نبایم کنید میبینیم مثلا ترکیه اونجا مهاجر ایرانی هم مهاجر این دو دوتا مثلا با هم دیگه چون هر دو اونجا دارن زندگی میکنن این با هم بیسازه چون هر دو درد و غربت دار میگه اجارتنا این ها قریبان ها هون ها ما هر دو غریبین در اینجا و کل غریبن دل غریبه شاید کجاست اجارتنا نداست و ندا جز ان شوای طلبی است منادای مضافم که منصوب میشه خوب اینم رحم هفت خطو نگاه کنید یا لایته یا لایته یا برسل لایته که در میاد دو تا ترکیب داره یکی اینکه یا حرف تنبیه به معنای علا این قله راحت و بهتری یکی هم یا حرف نداست و مناداش محذوف یعنی یا قومه ای قوم من او، ای یاران من یا لیتن آی کاش من یم نعلمعروفه یم نعوه غلط نوشته باشه یا نییت من یم المعروف معروفه یم نهوه حتی یهظوق رجال اون دب به ما صنو منع اگه دو مفعولی باشه من محروم کرد دو مفولی منعه د یعنی محروم کرد اینجا من یم نعل معروف معروف مفعول دوم یم ناز مفعول اولش بوده عناص و ذکر نشد الفقیر یعنی کاش کسی که محروم میکند مردم رو از معروف عطا و عطو کردن کسی کاش کسی که محروم میکنه محتاج را از عطا و کرم آه؟ کاش کسی که محتاج میاد و اونو از عطا و کرم محروم میکنه دست رد به سینش میزنه کاش کسی که دست رد به سینه صاهم میزنه و معروف رو بهش نمیده یوم ناهو خودش هم از معروف روزی محروم بشه این یومنه اوهو یومنه یه زمیر توشه که مفهول اول بوده شده نای فایل میخوره به من یعنی این که محروم کرده هو میخوره به معروف مفهول دومه کاش کسی که جلوی کار خیر رو میگیره خودش هم محروم شود از کار خیر یعنی یه روز خودش محتاج شد دست فت بزنن تو سیده خب چی بشه خودش محروم بشه حتی یزوغ رجالت تا بچشد مردانی مثل این تا بچشد انسانهایی قب قب یعنی عاقبت قب و ماسنه او آقابت کاری رو که خودشون کردند تا بچشند درد محروم کردن رو در سلت بسینه زدن قب و ماسنه او یعنی قب و عاقبت کار خودشونو رو بچشن کاش کسی که این کارو کرد و دست رد به زد. آ یک روزی خودش هم محتاج بشه دست رد به سینه‌ش تا اینکه که بچشه یه همچین آدمهایی عاقبت کار خودشون رو این قبه ما صنعو قبه یعنی عاقبت ما مای مصدری است یعنی عاقبت صنعهم عاقبت عمله خب نگاه کنید حاشیه 4 چی میگه میگه القب الا هیچ خب شاهد ما کجاست لایته است که تمنی و انشاء طلبی است درست چیزی نداره و قال ابو نواس یستعف امین ابو نواس داشته طلب عطفت می‌کرده از امین این امین عباسی اینطور گفته و حیات رأسک این و ها قسمه و حیات رعسکه یعنی به جان سرت قسم یعنی به سر مبارک قسم آه. و حیات رعسکه لا اعود و نمثله ها این له به معنای یعنی اله مثلها ها هم میخوره به مقاله مقاله یعنی گفتار خب لا عود و لمسلهایی که از معانی لام به معنای اله لا اعوذ یعنی لا ارجو بر نمیگردم یه حرفی زده بوده نسبت به امین حرف مربوطی بوده حرفی بوده که اون خوشش نمی اومده یه غلطی نسبت به اون از نظر امین کرده امین عباسی امین بی خلقوشو گرفته که این چه غلطی بود کردی؟ گفته به سر مبارکت قسم لا و لمسله ها دیگه من بر نمی گردم به مانند این حرف دیگه غلط میکنم این حرفو بزنم و حیات رستک و حیات رستک تحکیده برای این حیات رستک قسم. قسم به سر مبارکت قسم به سر مبارکت غلط میکنم دیگه مثل این حرفو بزنم لاعود و لمس لهایی جواب پسند. خب شاهد ما سر وحیات رأسه که که قسم است و انشاه غیر طلابی تمام قالت دعبل الخزای این دعبل شاهر شیعی شاهر آ، و آخر هم به شهادت رسید زبانشو از کامش بیرون کسودن یه دعبل خوزایی یه شعری گفته شعرش زیباست و این شعر مولانا هم از این استفاده کرده اون شعر معروفش رو داره که دی شیخ خمی گرد شهر میگردید و مروح خلاص انسان و مارزوست این هم همون سبکه همون مزمون رو داره دی ابل در زمان خودش میگه می میگه ما, ما اکثرا ناس سیغی اوه اوه اوه گل گل ما اکثرا ناس صیغه تعجب او او چقدر آدم تعجب کرده از ما میگه نگاه کنی او همین تو گنده گنده آدم دور میتونی ما اکثرا چقدر آدم بله لالا نه نه نه استغفر بله بلکه ولی بل مهم مینه بله ما اقل نهم چقدر آدم کمه پس اول چی؟ تعجب کرده از کسرت آدم ها خب بعد گفته نه بابا بلکه چقدر آدم کمه انسانم هم آرزوز. نیست گفتان آقا پرت و پلده داره میگی دیگه این چجوریه؟ خلاصه یا کمن یا زیادن دیگه نمیشه که بگیم اوه چقدر آدم بعد بگیم نه بابا آدم کو. گفته الله و خدا خودش میدونه انی لم اقل فنادا خدا خودش میدونه که من فند که و چرت و پرت نگفتم میگه میگم آدم زیاده بعدم میگم آدم کمه پرت و پله بگید نگفتم خدا خودش میدونه فند یعنی کلامی که انسان همینطوری از سر خرفت بودن بگه پرت و پله دروغ پیشتش ترجمه میشه به پرت پله میگه خدا خودش میدونه که من همینطوری پرت و پله و دروغ نگفتم خوبه چطور میشه که هم زیاد هم کم میگه هر دوش درسته چرا؟ چون توضیح میده اینی لعفتها اینه و لامم آورده تأکید کرد گفته اینی لعفتها اینی هی نعفتها علا کسی رو من موقعی که چشمم رو باز میکنم من یعنی از همینطوری نگاه میکنم بدون دقت چشم که باز میکنم علا کسی رو خیلی آدم نبینم میبینی صدها هزار نفر دارن هم تو راه میرم خب اینه لعفت ها عیدی. من چشم باز میکنم این لعفت ها موقعی که اون چشمم رو باز میکنم در وحله اول علا کسی رو خیلی از آدم ولیکن ولی وقتی دقت میکنم لا اراعه یه نفرم آدم نمیشه آدم کن انسان هماروزو آدم باید اوتفت داشته باشه آدم باید امانتدار باشه آدم باید صدق لحجه داشته باشه آدم باید وحشی نباشه آدم باید عفت و حیا داشته باشه این ها که نگاه میکنم یه می مرخ روگاه بود گسفند و, و. و گرگر آدم کن آدم به خصوصیاتش آدمه؟ در وهله اول نگاه کل بالا همهشون آدمه. هم. لباس پوشید در شیکتتر تمیز؟ دارن صحبت میکنن شکل آدمی میزدم. اما وقتی خوب نگاه میکنی هیچ کسی آدم نیست. چرا؟ چون آدم به خصوصیاتش آدمه نه به رخت و لی غصی یافش؟ هیچکن خصوصیات آدم؟ شاهد سر کدومه تو ما اکلا ناسه ما اقل لهم هر دو سیغه تحجبه و انشاهه بگید غیر تلبیست تجربه. تمام شد یه دوره نزمون هستم برای گفتیم حالا بیاد سر سیغه انشاه ها ام نه استفام تمنی ندا پنج تا درسه درست شد که دیگه باب انشاه تمام میشه اولیش امره یادتون باشه الان دارم بهتون میگم اگر بحث امری که من دارم میگم و خوب فهمیدید بحث دومش که نهیه تکراره که جدید دوش نیست اینو بفهمی اونو اصلا زودتر از موعدی که بخوایم بحث کنیم میفهمی و تکراره برات اما دقت لازم داره تو بحث عمر. شد پس بنابر این اول امر رو شروع می‌کنیم و لزوم هم داره که خوب دقت کنید به دلیل اینکه بتونید بحث نهی رو که تکرار این هستش با یه ذره خصوصیت که فرق کنه بتونید بفهمید حتی نهی رو توی اصطلاحات امروزی علم صرف که چیزه بهش میگن امر منفی اسم می‌گذارن نهی هم بهتره ولی اون امر منفی هم میگن پس واسه طواستون باشه اینو خوب بخونیم اونو خوب بلد بشید هم چیست؟ تو اول تعریف بکنی تعریف کنی می نویسید طلب المتکلم طلب؟, طلب المتکلم من المخاطب من المخاطب الفعله الفعله الا وجهل استعلا الا وجهل استعلا ول لزوم ول لزوم ول لزوم پس این تعریف امرو طلب المتكلم من المخاطب متکلم از مخاطب طلب چی رو الفعل یه کاری رو یه اکتوب بنویس کل بخور خوز بگیر یه کاری رو از مخاطب طلب نکن اما دو تا خصوصیت باید باشه یک علا وجهل استعلاء استعلاء یکی غید استعلاء یعنی از این جهت که من بر تو بالاترم و برتری دارم دارم به دستور میدم علاوشل استهلا یعنی پدر داره به برفرزندش میگه استاد داره به شاگردش میگه خداست داره به بندش میگه این باید باشه تو امر. امر حقیقی رو داریم تعریف میکنیم دوم ول لزوم لزوم یعنی چی؟ یعنی واجب این کار بکنی اگه نکنی از نظر من مورد توبیخ و تنبیه این تعریف امر حقیقی است چیه بگید؟ تعریف امر حقیقی طلب المتکلم درخواست متکلم من المخاطب از مخاطب خودش الفعل کاری رو هر کاری رو علاوه شلستهلا اونم این درخواست رو میکنه از این نظر که من بالاترم به دستور دستور رو میدم و لزوم و از این جهت که واجب هم تو این کار کنی چون من تشخیص میدم به دستور میدم این کار بکن این میشه امر حقیق مثل اینکه خدا میگه عقم عقم از سلات عقم سلات لذکری عقم سلات لذکری یعنی چی؟ یعنی عقل بندگان من اقامه کنید از سلات نماز هاتون لذکری برای اینکه منو یاد کنید برای اینکه من رو یاد کنید و من خدای شما هستم و با من در ارتباط باشید نماز بخونید خب طلب شده اقامه نماز متکلم خدا مخاطب من و شما درست علاوه چه اصطلاح هست یا نه بل اون خالق ما مخلوقه علاوه چه لزوم هست یا نیست بله درخواست کرده خداوند از ما که این کارو بکنیم دستور داده و اگه این کار نکنیم مورد توبیخ و تنبیه این امر حقیقی دوشون این شرایطیم هم که گفتیم مال امر حقیقی همه اینا این شرائط ماله بگید امره بگید حقیقیست اینا باشه میشه امر حقیقی حالا اگر یکی از اینا نبود مثلا طلبه توش نبود یا مثلا استعلا توش نبود یا لزوم توش نبود یکی از اینها نبود به واسطه ی قرینه ما معنای اون امر مجازی رو میفهمیم به واسطه اون قرینه ما معنای مجازی اون امر می رو می‌فهمیم. مثلا این آیه رو نگاه کنید. قل, قل. اعملو قل اعملو. فَفَسَيَرَ اللَّهُ فَسَيَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ قُلْ الله فَسَيَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ این قولش به نعمه، نعمه حجیه. چرا چون خدا میگه به پیامبرش هم داره میگه؟ استعلاح از لزوم هم از پیغمبر واجب ببره اینه به مردم بگه. امر الهی رو ابلاغ کنه. کوتاهی نمیکنه، یعنی قول امر حقیقی. اما اعملو. خدا به من و شما و دیگری و اینها گفته اعملو. هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید. و سیار الله ف یعنی زیرا این به قرینه و سیار الله معشه اعمل و امر عیقه نیست ا عملو الله ها و رسول خواهد دید خدا عمل شما رو و رسول خدا و معمنون علمه و درست شو و سیار الله و رسول خدا و رسولش و معمنین عمل رو مین نه این وقت طوری گفته پیغمبر به اینا بگو هر غلطی دلتون میخواد بکنید بکنید چون خدا هست میبینه رسول خدا هم هست میبینه مومنینم که رأسش امیر در قیامت میبینم میبینیم چه غلطی کردید خب این فردای قیامتی که میاد بگه خدا یا تو خودت گفتیه اعمالو هر غلطی میخواد بکنید بکنید بگه به اون گندگی رو ندید دید و سیر الله ا این امر طلب عمل از شما نیست بلکه تهدیده نسبت به کاری که میخواد مثل که من توی کلاس به گم بخن بخند آقا بخند, بخند بخند امتحانم هست اون قطعا خودشو میکنه که نمیخند به غرینه امتحانم هست میفهمه که بخند تهدیده درست شد؟ تعریف امر صداقت میکنه صدق داره بر قول امر حریفه اما اعمالو امر مجازی حالا یه امر مجازی که با قرینه فهمیده بشه بیست تا معنا ممکنه باشه شد یک یکی ما میخونیم همه هم با قرینه میفهمیم خودتون هم رو میدونید همه بخند بخند امتحانم از خود زد پرمون درست شد پس تعریف امر رو گفتیم حالا نگاه کنید توی خود کتاب تعریف امر رو کرده ده میگه الامر طلب الفعل طلبو اضافه کرده به مفعولش اون فائلو، رو اینها رو حذف کرد یعنی در واقع اینجوری بوده طلب المتكلم من المخاطب الفعل چون مصدر گاهی اضافه میشه به مفعولش طلب الفعل علامه الاستعلا و لزوم رو هم نایقورده. اول شاید احساس کرده میگه این تعریف ناقصه. حالا ما خوشبینانه میگیم چیزی که استعلا داره از بالا داره دستور میده خب پس من یعنی حتما واجب و مسدد گوش نه لازمه و لزوم بیه چون خدا هم توی خود قرآن دستوراتی میده استعلا توش هست اما لزوم توش نیست. طلب هم توش هست اما لزوم چون فقط لزوم نیست میشه امر مجازی. پس لزوم هم لازمه. تعریف رو درستش کردید طلب المتکلم من المخاطب الفعل علاوش الاسطلا بگید ولو از این تعریف رو حفظ میکنید میفهمید و این تعریف امر. نگاه کنید بوش امر امر. به چی شناخته میشه امر؟ به این تعریف و ما کار نداریم به این تعریف شناخته شد حالا عمر در زبان عربی ام در زبان عربی چهار سیغه اصلی داره که تو این کتاب ام در زبان عربی چهار تا سیغه اصلی داره تو این کتاب زیاد شد دو تا سیغه ام های غیر اصلی داره که من میگم این کتاب نیست کتاب های دیگه هست حالا شما یاد میگیرید اون هرم که اگر توی کنکور یا جایی شما تکمیل بلد باشید پس الان میخوایم چی بخونیم شکل ظاهری امر بعد چه اشکالی دیده میشود پاسخ چهار سیغه اصلی دارد که در کتاب ما هم. دو تا سیغه فرعی دارد که نکته توشه نام هم عمره سیغای فری شد این هم دوتا میشه ششتا چهارتاش اصلیه که کتاب اومده دوتاش هم فریه در کتاب دیگر آمده با شما ما به ترتیبی هم میگیم که بیشتر هست یعنی اگر صد در صد مثلا صد تا سیغه اهم داشته باشیم اولی بیشتر دومی کم کم تر از اون کمتر چهارمی از اون کمتر پنجمی و ششمی هم که فریه هستند و موردهایی که فرعی سیغه امره از اونها همه کمتر نکته توشه رفتیم سراغ این فریه ها به خاطر نکته که نکتش هم خواهیم کن یک یک فعل امر حاضر امر حاضر همون اذرب سیغه فعل امر حاضر که این زیاد نتانه بیشتر مثل اقم سلات لذکری اقم سالات لذکری دومه اقیم سلاته لذکری درست شد؟ یه زیاده دو این اولی رو سیغه امر حاضر بهش میگن امر به سیغه او. سیغه امر حاضر یکی اینا دوم اولی امر به سیغه دومی امر به لام امره به که بهش میگن امره قایب سیره امره قایب امره به تو کتاب نگاه کنید تو امثله مثل مثلا شما میگه لیزرب لیزرب زیدانی باید بزنید زیدان خبیل امره امره به لام مثل کتاب نگاه کنید سه دو ولیوفون و باید وفا کنند مردوها به نظر خودشون وقتی نظر کردن باید به نظرشون وفا کنند ولیوفو نزوله ولیتوفو تتوفه بد شده اتوفه یتوفو باید تف ولیتوفو به بیت العتیق و باید تواف کنند به این خانه قدیمی خانه خدا که به دست حضرت آدم ساخته شد این خانه خدا رو باید درش تواف کنند پس به نظر خود وفا کنند و به خانه خدا تواف کنند ولی تب وفا ولیوف حالا اگه گفته بود اوفو وجود امر به سیره. اتّبّفو امروز سیره. حالا بالام داره میگه، ولی نزورهم نزور هم، ولی اتّبّفو بال بیت دو تا. شد؟ سه. اسم فعلا امروز اسم فعلا مثل آیه سببمو نگاه کن مثال سببم علیکم کن علیکم یعنی ارزمو بچسبید علیکم کن بچسبید به خودتون خودتونو بپایید چرا؟ چون لا یزر رو کن منزل لا چون زرری به شما نمیزنه کسی که گمراه شده اذا اهتدیتم زمانی که شما هدایت پذیرفتید وقتی تو هدایت شدی تو هدایت شده هستی گمراهی دیگری در تو اثری نمیکنه. پس تو سعی کن خودت رو به چسبی و هدایت پیدا کنی تو مؤمن باش کفر دیگری در تو تأثیری ندار خب یه علیکم انفوسکم میشد بگه الزمون میشد نوع اول میشد بگه لیلزمون میشد نوع دو علیکم اسم فعل حالا علیکم گفته و الزمو نگفته اسم فعل همیشه شدتش بیشتره من یه موقع به یکی میگم اص کد. ساکت شد یه موقع یه صح، سح. سح اسم فعله یعنی اسکد. اما سه یعنی ساکت شو این تأکیدش و شدتش چیه خدا اینجا اینگه با تشهر گفته با, با بچسبید به خودتون شما اگر هدایت شده باشید ضرر دیگران از زلالتشون به شما نمیرسه خب اینم اسم فیل چهار چهار مستری که یعنی مفعول مطلقی که جانشین فعل ام شده باشد مفعول مطلقی که مزدری که جانشین فعل ام شده باشد مثل و بالوالدین احسانا این احسانا جای احسنو نشسته یعنی بوده و احسنو بالوالدین بلشو؟ معلوم این و بلوالدین احسانا یعنی بوده و احسنو و بلوالدین این فعل عمره عد شده به جایی جمله انشایی که لا تعبدون اعبودو الله خدا رو عبادت کنید و احسن و او اعبودو الله و احسن و بلوالده یعنی احسن و بوده شده بالوالدین اینه احسانا این احسانا جای احسن نشد اینو تو کتاب مبادی هم خوندید که میگه مسترگاهی اوقات جایی فعل عمشون جایی مثال میزن زربن الجانیه زربن یعنی ازره الجانیه مفعولشه این زرون جای ازرب نشست اینجام احسانا جای احسنون نشست این چهار قالب دیگه پنجمی هم نداره دو قالب حقیقی این چهارتا سیغه های حقیقی امر امره به سیغه ازرب امر به لام لی ازرب. اسم فعل مثل صح مستری که جانشین فعل امره مثل زربن الجانی درس شد یه چهار مورد شما بیشت از این پیدا نمیکنید اما به یکی از این چهار می اما اون دوتایی که کتاب ذکر نکرده و جزء موارد فرعی است شد. ولی هست فعل امروز او نام، اونام سیر امرن یک، یک جمله ای که ازش اراده جمله ای که ازش اراده امر بشه مثل و المتلقات آیه و و یعنی زنانی که طلاق داده شد مبتداز یتربسن نه بس نه بساد یه تربست یعنی نه منتظر میشه و المطلقات یا تربست نه به انفسهن نه سلاست قروع به انفسهن نه سلاست قروب. شد میگه والمطلقات المطلقات و زنان طلاق داده شده یا تربستن منتظر میمانند به انفسهن نخودشون. خودشون تحکیت میکنه اینا حتما حتما خودشون منتظر بمونند یعنی عده نگه دارند سلاست قروب سه ماه اینها عده باید نگه دارند یعنی بعد از اینکه شوهرشون طلاقشون داد نمیتونم تونم بلافاصله ازدواج کنم. خب این در واقع اگه بندازیش تو لاله آزمایشی میشه یا ایتو الح مطلقات ای زنانی که طلاق داده شده اید تربسنا به انفسکن کن سلاست قرو منتظر باشید و عده نگه دارید. اینطوری میشه دیگه. اما به شکل جمله مبتدا و خبر جمله اسمیه خب چرا؟ به خاطر تحکید میگن اگر خدا گفته بود یا ایت و هل متلقات ترب بسنه به هم فسکن غروب اده نگه دارید این اگر مثلا فرش کن امر بود حالا که میگه والمطلقات هل این تأکیدش خیلی زیاده چرا؟ انگار اینطوری گفته که این زنها خودشون اده نگه میدارن ما خب بریم خبر میدیم این مورد پنجم جمله اسم که از آن اراده بگید ام شده است. 6 6 جمله فعلی که از آن جمله ای که از آن اراده اهم شده است که تو سوره یوسف یوسف به اون شخصی که تعبیر خواب رو میخواد بگه به اون میگه تزرعون سب سنین میگه تزرعون سبع سنین دعاً اون میگه خواب اینه اینه الان من بیام یه چیزی به شما بگم شما بخواهد به من دستور بده میگی که میخوری میگه بخور و بعد یوسف هم میگه بکارید هر سال تبقیه عادت دعبن یعنی عادتن ولی یعنی میگه تزرعون میکارید از از سنین دعبن بعد دلیلش هم بر اینکه که تزرعونه به معنای ازرعو هستش اینه که پشتش فعل عم میاره عطم میکنه خب عم به هم را میشه دیگه بعد میگه فما حسدتم فزروح و فیسون بله هر هم که درو کردید بذارید تو خوشش ببینه زروح این زروح با زال شده به جای تزرعونه خب عطف انشاب اخبار که غلطه پس اون تزره به منه ازرعوست است. درست شو گفتم بابلان مثل که ما به جایی که بگیم بیا میگیم میایی میایی یعنی تعتی تجیب خب این یعنی ایت جع اما قدرتش چیه؟ بیشتر این دو مورد هم جز مواردی است که اضافه شده که جمله ای که ازش اراده فعل هم بشه و یکم جمله فعلیهای که ازش اراده فعل هم بشه اینا سِیق فعل امره خب اگر اون تعریف صدق کنه میشه عقل حقیقی اون تعریف صدق نکنه یه گوشه ایش اشکال داشته باشه میشه امر مجازی حالا اگه امر مجازی شد به چه معناست اون معنا رو باید به واسطه قرینه ما بفهم. درست شد خیلی ساده است حالا نگاه کنید توی امسله کتاب اولی رو نگاه کنید من رسالت لعلی رضی الله عنه از قسمتی از نامه‌ای که متعلق به امیرون به حسابه ها الابن و این را فرستاده برای ابن عباس و کان عاملا به مکه تن و ابن عباس کارگزار امیر در مکه بود امیر خودش در کوفه کارگزار او در مکه این براش فرستاده. چی میگه؟ میگه اما بعد اما بعد از هم رسنهای الهی و اقم لناس الهج اقم کی داره میگه امیر المومنین. حاکم به کی میگه به زیر دست خودش کارگزارش این جزء فضایفی هم هست که باید انجام بده اگه انجام نده اصلش میکنه باش برگورد میکنه اقم لناس الهج حج و مسائل حج رو برای مردم اقامه کن یعنی شرایط حج رو آماده کن وقتی تو تو مکهی و ذکر هم به ایام الله و مردم را هم متذکر کن به ایام الهی یعنی مثلا عید قربان که روز عرفه که این دقیق انجام بشه احکام حج و ذکر هم به ایام و و بنشین برای کارهای مردم برای رخدفت خ امور ال عصرین در هر دو عصر اون دو تا عصر که نداریم تو روز یه دن عصر داریم که عصر غروبه یه دن هم صبح داریم که بعد از نماز صبح بعد از این موقعی که هوا داره میخواد تازه روشن شه شبيه همین دوتا اون صبح هنوز خورشید طلوع نکرده تا موقعی که طلوع میکنه و اینها غروب همون موقعی که خورشید داره غروب میکنه تا موقعی که هوا تاریکه این دو تا زمان شبیه همه یکی صبح یکی شب اصر صبح و عصر رو با هم دیگه تقلیب کرده مثل که میگن حسنین والدین عبوین تصنیه بسته یعنی صبح شان یعنی صبح بشین مردم بیان تو به امروانتو بیت بگن بعد از نماز صبح نروید بشین تو مسجد و کاران مردم رو در خفت هم که شد قبل از نماز مغرب بیا تو نماسید بیشین مردم بیان کاراشون ردیف کن خب حساب کن اگه یک حاکمی هرکی بخواد باشه از هر مسئول یه همچین کاری رو بکنه دیگه از کاری رو زمین نمیمونه مردم صبح میان کارشونو میگن اصری میان میگن آقا چی شد پیگیری کردی نکردی یه نبتو کسی بگه آقا فردا بیا پس وردا بیا وجلس لحومول اصریم پایین نگاه کنید ایام الله علتی آغ و فیح المازین علا سو عماده. این خوب نیست که منظورش از ایام الله اون روزهایی که خدا گذشتگان توش ادب کرده به خاطر سو احمادش بله اونام جز ایام اللهه ولی ایام الله اینجا بعد از مکه و اینها منظور عید قربان عید فطر خیلی از این مثل اول ماه مبارک رمضان عید فطر این نوع چیزها هم ایام اللهه اینها رو حکومت باید در دستش باشه رو به الاسرین منظورش از دو اصر و ول عشیق صبح هست و شد منباب تقریب تصنیه بسته شده از باب تقریب خب این دوتا بعد میگه فعفت المستفتیه افتایفتی افتاان یعنی فتوا دادن فعفت المستفتیه کسی اگر از طلب فتوا کرد حکمی رو خواست فتواه بده بشه. و علم الجاهل و تعلیم کن به جاهل، نه که تو حکومت تو کسی نباید جاهل باشه سعی کن که جهر رو با آموزش برطرف کن و ذاکر العالمه و خودت هم عقل کل حساب نکن ذاکر العالمه با عالم های شهر مذاکره کن کن خب این چیزای خشنگی یه افته علم زاکر اجلس ذکر اقم اینا همه فعل هم امر حاضر هم داره مولا میگه به زیر دست خودش جزء وظایفشه استهلا داره لزوم داره همه چه سر جاره توضیح دادن امر بلام ولیوفو نزوره هم ولیتتف و بلوی کلعتی یتتف وفو یتوففو تتوفف یتتوففو تتوفف یعنی شرخیدم تواف کرد بعد تتوفف تای تا اول دو نقطه تبدیل به علف میشه تای تا علف و در هم ادغام میشه اتتوفف مزالش هم از روی همین ساخته میشه یتتوففو بعد یتتوففو لام میشه میشه لیتتوفف لَیَتَطَوَّفَا لَیَتَطَوَّفُوا وَلَیَتَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ این لام امر قاید مثل ولی یوفو اگه قبلش وا بیاد وا بیاد ثُمّ بیاد ساکن میشه اگه اینا نباشن مکسوره لَیُوفُوا لَیَتَطَوَّفْ ولی وا با ثُمّ ساکن میشه و عَلَيْكُم اسم فعل امر نشاسید به خودتون چون لا یه زر بکنی سیناف بیانیه. لا یه زر بکن منظله چون ضرری به شما نمیزنه کسی که گمراه شده. هنگامی که شما هدایت شده باشید. اگر شما واکسینه شده باشید ویروس دیگه در شما تاثیر نمی کنه ویروس زلالتون. شما سعی کنید خودتون رو به چسبید. واکسینه کنید. و قالب بلوالدین احسانه. یعنی به احسنو بلوالد. خب حالا اگر این رو فهمیدید درست شد بیایید توی متن البحث میگه اذا تعملت على امسلتت طائفه افت اگر دقت کنید توی مثالهای گروه یک لعیت کلن منها یشتمل و علا سیغت هر یک از اینها مشتمل است بر سیغهی که یطلب بها علاوه ها علاوش تکلیف اینجا داره میگه ها لزوم یطلب و به ها علاوش تکلیف ولی الزام تکلیف و الزام یکی لزوم بر وجه تکلیف و... خب یه لحظه که سرور رفت دوباره برش گردوندیم خب درست شد شما هم که نوشتید یه لحظه قطع شد و خب پس بنابر این میگه که علاوه تکلیف و انظام حصول چیزی که لم یکن حاصلن وقت طلب ثمزا عن وقتی شما دقت کنی ان امتن نظره امتن نظره دقیقتن نظره یعنی دقیق کنی نظرت رو رئی طالب الفعل فیها اعظم و علام من طالب الفعل میبینی اون کسی که داره فیل رو طلب میکنه اون جایگاهش خیلی بالاتر استنس بعددونکس که داره فعل ازش تلبشه. پس طلا هم هست اونجا که من گفتم لزوم لازمه اینجا داره توضیح میده اونجا نهی برده که ما تعریف و درست کرد. و حاض ح اممر الحقیقی این امربر حقیقیه این خطکش دست شما، این تعریف دست شما هر کجا دیدید کلن صفر تاصد تطویق میکنه میشه امرره حقیقی و حاض اول امرل ح و حالا اگه دقت کنی، صیغته او سیغه امر رو دقت کنی اون لفظ و شکلش رو رعیت حالا تخروج من عربه می‌بینی از 4 شکل بیرون نیست 4 شکل گفتیم 4 شکل 4 شکل, شکل اصلی دو شکلا من عرض کردم که فرعیه برای مبالغه میاد جای این شکلای اصلی می‌شینه لا تخروج عن عربه یک هيئت فعل امره یکی فعل امر حاضر امره به صيغه کماف المثال الول اقم و المزار و المغرون و بلام الامر امر بلام امر غایب کماف المثال الثانی ولیوف و نزوره هم ولیت تب و اسم و فعل الامر مثل علیکم كما کماف المثال الثالث و المستر و انناه با انفعل الامر یکم مستری که نیابت میکنه از فعل الامر مستری که نیابت میکنه از فعل هم مثل قبل والد این احسان کما فرمثال راب و یکی هم از جملت و اسمیتو اول جملت و فعلیتو ان لاعبت و انفعله هم جمله اسمی و فعلیه که نیابت کرده از فعل امر للمبالاوت برای مبالاوت اینها امرهای است حالا بیا توی قوائد نگاه کنید دلمرره عر... رب و عسیق چه سیره اصل است. فعلال ام یک ول مزارو و المغرون و بلام العمد دو و اسم و فعل امن سه یعنی مفهول و مست یعنی مفول مطلق. اننای با هم فعل ام چه دو تای بعدی چی بود از جملت اسمیت تو اول جملت فعلی تو ان نعه و تو هم فعل ام نر جمعه اسمی و فعلیه ای که نیابد کنه از فعله هم به خاطر مبادر خب این امر حقیقی اما نگاه کنید نگاه کنید توی قواعد قد تخرج و قد یعنی چی؟ گاهی قد تخرج و سی امره گاهی اوقات خارج میشه سیغه عبر قد تخرج و سی امره وای اوقات خارج میشه سیغه امر همین سیغه که خوندیم آن معنا ها اصلی از این معنای اصلیش که بالا تعریف کردیم خارج میشه الا معانی نخرق به معانی دیگری میاد میگه معانی دیگر ما از کجا بفهمیم؟ میگه معنای مجازیه و شما خوندید هر مجازی تو ما با غرینه میفهمیم معانی مجازیه و هر مجازی با قرینه فهمیده میشه اخرق تستفادم سیاق الکلام بعدش بنیست و قرائن الاحوال تستفادم سیاق الکلام و قرائن الاحوال سیاق الکلام یعنی قرائن لفزی قرائن الاحوال یعنی قرائنه حالیه چون قرینه دو جور بود لفزی و حالی تستفادم سیاق الکلام و قرائن الاحوال قرائن الاحوال شد خب مثل چی نگاه کنی. کل ارشاد مثل اینکه از آن قصدش نیست عمقا ارشاد میکنه نصیحت میکنه و دعا تو دعا میکنی ولی التماس حالا اینا رو یکی یکی میگیم و تمنی و تخییر و تصویت و تعجیز و تهدید ولی اباحته بازم هست هم هست. مسی مسخره میکنه. یه نفر خطش به یه مسخره اش میبینی؟ میبینی بابا، میبینی سینا. واخه اون ویفا جلال. تشویق میکنه. شما دوستتون داره مسابقه میده تو دو میگید بودو بودو بودو بودو. همین بودو بودو تو دیگه. چرا اش نمیین؟ به تشویقش میاد. معانی فیل عمل از قرائن فهمیده میشه وقتی بگید مجازیه یکی یکی اینا رو میگه حالا ما یکی یکی میخونم درست شد؟ دیگه مشخصه حالا قرائنش هم شون میفهم اولیش ارشاد اولیش ارشاد ارشاد چی توش نیست؟ اون لزومه توش نیست لزومه توش نیست مثلا شما تو قرآن نگاه کنید مثلا بزنه و میگه ازا تداویان تون، ازا تداویان تون، بدعینن، الا اجلن مسمما، الا اجلن مسمما، فقط تو ب، فقط تو ب فقط فکر تو روح دیگه نوای قرآنه خدا داره میگه به من و شما میگه میگه ازا تداین زمانی که به هم قرض میدید به دین دین و قرزی به هم میدید اله اجل مسمو وقت هم براش میذارید اجل یعنی وقت تو یه وقت ما یعنی کسی میاد از من پولی میگیره میگه آقا من ما آینده به شما میده اول ماه میگیره میگه آخر ماه شما عجل گذاشتی وقت میگه اگر اینطوری قرض دادید و بو حتما بنویسید او آقا بنویس که من صد هزار گرفتم در تاریخ یکی اسفند یکی فروردین انشالله پس میدم بنویس بده امضا کن بده فکت و بو خدا داره میگه به من و شما بندش هم میگه تلبم که کتابت داره رزرو، قرضی که وقت داره. چون وقت نداشت روشی که خود دوایی نمیشه. اگر سر وقت با هم تواو فکر دیت بینه میشه. فکر یعنی اگر ترزتوم شرایطی داره بینه اما ببینید استعلام تو شاه خدا داره میکنه. اون روزها هم نیست ما می اینو از سنت پیغمبر و از موارد دیدیم الان شما میدونید دیگه الان شما خیلی از شما از اون یکی قرض میکنه یا کسی میکنه یا یکی قرض میکنه همه مینویسند رسیف میدن و فلان پیدا نه اگر نکنی گناه نکردی لزوم نداره گوشتو نمیگیره خدا ولی گوش کنی خوبه اینو گرم ارشاد نصیحت کرد دوشون امره چی چیه ارشادیه پهش میگن امر ارشادی امر مولوی نیست امر وجوبی نیست امر وجوبی امر عیره امر ارشادی فهمیدید اشان شاید ها ازاق داینتون به دینن الا عجلن مسمع فکتو حالا نگاه کنید بیمیشون چی میکن یه مثال بزن میگه قال فی مده سیف دولت آقای عبودتیب گفته در مده آقای سیف دولت در مرکز سیفالدوله گفته به پادشاهان زمان متنبی داره به دیگران میگه مرت سیفالدوله میگه گفته کزا کزا یعنی این چنین فلیسر سرا یسری یعنی شب پیمایی کرد لشکرکشی شبانه کرد فلیسر با لام رو دیگه این چنین لشگر کشی کند من طلب عادی کسی که به دنبال دشمنانش است طلب عادی کسی که تقریب میکنه طلب میکنه دشمنان خودشو اینطور طلب کند اینطور دشگر کشی کند اینطور یعنی مثل سیفت داری کذا یعنی کذا از سرا که یعنی مثل این زا این یعنی این اشاره به لشکرکشی کردن داری که مستر فلیسره باشه کذا یعنی کذا از سرا سری می نویسن از سورا مستر یعنی شب پیمایی کردن لشکرکشی کردن مثل این لشکرکشی منظور مثل لشکرکشی سیفت دوله پس باید لشکرکشی کند کسی که دنبال دشمنان است و مثل سرات صنا همین گفتم که از سراح. و مثل این لشگر کشی کردن که تو کردی بلی کنه تلاب طالب و یو طالب و مطالبه یعنی تعقیب کردن تلاب و اعدا تلاب یعنی تعقیب کردن و دشمن رو دنبال کردن پس مثل این باید باشد تعقیب دشمن یعنی مثل کی مثل سیفالدین حالا آیا متنبی داشته به اون پادشاهان زمان به کسان دیگه دستور میداده لزوم توش بوده که شما باید مثل سیف صیفالدوله لشکرکشی کنید ببینید همین عین این واله گوشتون میکنید میگه نبوده که ولی نصیحت میکنه میگه چه سیف و دوله چه قشن لشکرکشی کرد چطور دشمنان سر جای خودشون نشین شما مثل این رفتار بکنید هرکی دنبال دشمنشه طالب عادیه و طلبش باید مثل کاری باشه که سیفت دوله کرد و مثل سوراکه فلیه کنه طلاب تلا... یعنی طلاب مطالبه تغییب دشمن باید مثل این تغییب کردن و شبانه تو باشه این باید دنبال شد شاد مثل اینکه یه کسی قبول شده فلان و غیره شما به یه کسی دیگه میگید که مثل این باید بخونی تا قبول بشی ببینشات گفت ببین چه خون قبول شد باید اینطوری خون باید این چنین بود کذا فلیسر من طلب علی عادی ولی منم اون من طلب علی عادی کسانی که دنبال دشمن هستن اونها رو دستور به این بده و بگه اگه این کارو نکنید گوشتون رو می‌گیرم و مثل سراکه فریه کنه تلاه از سرا یعنی از سیر و لیلند شب حرکت کرد. خب این ما این چی توش نبود لزوم توش نبود من یه آیم مثل دو شیشمیش که دومی مجازی میشه این دعاست دعا استعلا توش نیست از پایین به بالاست وقتی طلب از پایین به بالا باشه میشه دعا از پایین به بالا که باشه میشه دعا مثل که شما میگه رب اقفرلی ولی رب اقفرلی خدا یا ببخش بر من ولی و بر پدرها خب اقفر فیله شما دارید طلب غفران میکنید متکلم داره از مخاطب که خدا طلب میکنه اما توشه؟ نه تو پایینی درخواست وقتی از پایین به بالا باشه دعا یه قطعا لزوم هم توش نیست دیگه ورست چون پایین که نبیده دستور بده بود رب اقفرنی ولوالده دعاست حالا اینو نگاه کن و قال و مورد خطاب قرار داده متنبی سیف الدوله خب متنبی پایین سیف الدوله خلیفه بالا بالاست این او رو مورد خطاب قرار داد چی میگه میگه ازل ازال یوزیل و یعنی برطرف کردن از بین بردن ازاله میگه عزل حسد الحساد انی الحساد جمع حاسد میگه حسادت این حسودان رو از من کم کن برطرف کن به کپتهم با درهم کوبیدنشون یا ای سیفالدله حسادت این حسودها که به جان من افتادن اینها رو از سر من کم کن ازل حسد الخصاد انی از من حسادت اینها رو برطرف کن با چی به. با کبطه درهم کوبیدنش لهولا. بزن اینا رو لح و لورده کن این که به جون من افتادن درخواست کردن دیگه یعنی خواهش میکنم. از پایین به بارست انگار سیف و میگه اینا حسود تو اند من چرا بزنم اینا رو این فعنته استیناف بیانی دلیله میگه فعنتا لازی سیرته لی خسده سیرته یعنی جلده میگه زیرا انتل لزی تو کسی هستی که سیر تهم لی حسده سیفت داده تو کسی هستی که اینا رو حسود من کردی تو هی به من پول دادی هی به من دینا رو درهم دادی هی من, من لطف کردی اینها دیدن نتونستن طاقت بیارن به من حسودی میکنن حسود من شده تو اینا رو انداختی به جون من خودت هم اینها رو بگیر با در همکوبیدنشون شرلشون از سر من کم. از الحسد الحساد انی به کبته هم فانت الازی سیر تهم لی حسد شد دعاست مثل رب بغفر و دو. باید. خب ببین من برای مواردی که هست یه مثال دیگه هم میزنم به شما اونو میفهمی بعد اینو داریم میکونی حالا نگاه کنید توی متن درس البحث اونزر زلل طایفت ثانیه نگاه کن به گروه دوبام تجد ان الامده میبینی که امر فی جمعیه حال هم یستعمل فی معناهو امر در همه این موارد استعمال نشده فی معناهو اله در معنای حقیقش معنای حقیقش چی بوده؟ و هوا طلب الفعله من الالا لله عدنه و علا وجه الاسم اجاب و الزام وله درست شد؟ اون طلب فعل است از کسی که بالاست هم اعلا للاظان جو داره میگه اون بچه لزومش هم پی تعریف کرد طلب فعل است از طرف اعلا نسبت به ادنا اونم بر بچه ایجاب و الزام این همو تعریف ماست از این خارج شده خب لم یستعمل درا و هند ما یدل نخرا بلکه دلالت میکنه بر معانی دیگری که یدرکوها از سامه او که این رو مخاطب میفهمه نگاه کن اینجا میگه من از سیاق یعنی قرینه لفظیه و قرائن لهوانی یعنی قرینه های حالیه که اینو مخاطب از قرائن لفظی و حالی خلاصه به واسطه قرینه متوجه میشه حال مثال فعب التی فی المثال الخامس جناب ابی عبید متنبی در مثال پنجم لا یرید تکلیفا قصد نداره تکلیف کنه پادشاهان زمان به تکلیف کنه و لا یقصد و اله الزامه و نمخواد الزام کنه اونها رو و این نما یعنصه و شده، بلکه داره نصیحت میکنه ارشاد میکنه لمن من از حیفت دولته به کسانی که رقابت میکنن با سیف الدوله پازشاه ها میگه نصیحت میکنه و یرشد حاملت طریق المصلا و اونها رو ارشاد میکنه راه نمایی میکنه به راه بهتر راه درست مسلا یعنی فضلا راه بهتر. راه درست رو داره بهشون نشون میده. که طلب مجد ولی کسب دفیته. در طلب مجد و کسب رفعت و اینکه دشمنان رو بخواهد سر جاشون بشون و رفعت و بلندی پیدا کنه اون نصیحت میکنه. فلعمرو هنال نصح ولی ارشاد لا لیجا بزن هم به حقیقی نیست برای نصیحت بشه. و سیغتال امفل مثال سادس سیغه هم در مثال ششون. لا یرادو به ها معناها الاصلی معنای اصلیش اراده نشده لأن المتنبی و خاطب ملی که او زیرا محتنبی داره مورد خطاب قرار میده پادشاه زمان خودشوه ملیک خودسته ول ملیکه لا رو و اهلون میشه پادشاه که کسی از زیر دستاش مورد عمر قرار نمیده و انما یرادو به دعا بلکه منظور دعاست درخواسته. کزانی که گُن نسیقه للامر این قاعده در هر کجای که سیره امر باشه يخاطب به ها الادنا من هو و انا منه منزله و کسی که پایینتر هست کسی رو که بالاتر است از او از جهت منزله و مورد خطاب قرار داده میشود دعا درخواست از پایین داست درست شد حالا بریم سر مثال هفتم, هفتم مشبه فرمایید. مثال هفتم مش بفرمایید مثال هفتم جایی است که مساوی از مساوی چیزی بخواد این که نیست پایین به بالا هم نیست مساوی به مساوی مثلا دوتا تا رفیقن تو کلاس نشستن کنار هم اون یکی میگه فلانی خودکارتو بده اعطنی قلمت خودکارتو یه لحظه بده ایتنی قلم قلم به من بده خودکار به من بده یکی میگه چی با؟ میگه درخواست قلم کرد درست شده نه؟ مصاوی به مصاوی روش میگن التماس مساوی به مساوی میشه چی بگید التماس توی یه ردن و هم توی یه ربن یکیشون با اون یکی میگه اسم منه می میگه خواهش کرد با اسم می خواهش میشه التماس زیاد شما دار خودتون بخواه اینجا چی وجود نداره استعلاع وجود نداره چرا چون هر دو مصاوی. مثل این شعر نگاه کنید قفا نبک منذک را حبیب و منزلی شهر اول معلقه امروان ریست قفا به دو تا دوستش میگه دو دوست خودش چون شعرها تو سفر میگفتن حداقل دو تا دوست کمترین همراه دو نفره به اون دو نفر همراهش میگه قفا بیستی نبک با من بگریم شما هم از سوز دل من گریه کنید نبکه مجزون شده در مقابل دفاع، یعنی انتقفا نبکه من ذکرا حبیبه ذکرا یعنی تذکر حبیب یعنی معشوق و منزل یعنی خانه او یعنی رسیدیم به منزل معشوقه و جایی که او زندگی میکرده من یادم افتاده اون معشوقه و منزلش رو من را حبیبن یعنی من تذکری حبیبن من ذکرای حبیبن مصدر اضافه شده به مفعولش این من متعلق به نبکه یعنی بیستید اگه بیستید من گریه میکنم به خاطر یاداوردنم معشوق و منزل او شما هم از گریه من به گریه میوفتید بیست خب این قفا به دو دوستش میگه خواهش میکنم وایسید اگر بیستید من پای های گریه میکنم به خاطر که مشروع و منزلش رو یاد کردن شما هم به خاطر من گریه میکنم به سخت صفت منزله منزلش کجا بوده؟ به سخت اللوا در منطقه سخت اللوا خب سخت اللوا کجا بوده؟ این بینه جارو بعد از میشه صفت به سخت صفت منزله جار و مجرور و ظرف بعد از معرفه میشه حال این بینه ظرف حال هست از بار سخت سخت و لوا در حالی که بین دخول و حومده سخت و لوا در حالی که بین منطقه دخول و منطقه حومده درست شد نه؟ یعنی مثل اینکه که بین کرج و غزوینه مثلا آب یک درست شد؟ خب شاهدش قفاست که این قفا به دو دوستش داره میگه میشه مساوی به مساوی التماس خواهش نگاه کنید و ازا تدمرت در مثال از سابعه وجدت امرال غیس میبینی امرال غیس رو حالا آیا این قفایی که امرال گفته واقعا دوتا دوستی بودن همراهش بودن در یک سفری و به اطلالی رسیدند و اینطور گفته بعضی هم, این. بعضی هم میگن نه اینجا داشته شعر میگفته وصف و اطلال کرده یعنی واقعا این نبوده که دو دوستی بوده خطاب کرده دو دوست شعریه بوده دو دوست خیالیه بوده ایشون اینو میگه میگه و ازا تدبتل مثال از سابعه وجد تا امرال غیس تخیل و دو رفیق برا خودش فرض میکنه یستوقف ما طلب میکنه به و و یستبکیه ما و از اونها طلب میکنه همراه خودش بگریم جریان علا عادت شوهرها طبق عادت شوهرها که میگفتن فر اطلال میستیم و گریه میکنیم و تو سفر هم میگفتن دو نفر همراه همیشه داریم. عادت شوهرها چی بوده؟ از زیرا یتخیل و هم گمان میکرده یکی از اونها له رفیقینه که تو سفر دو رفیق داره یستهبانهی فی قدوهی و رواهه که همراهی میکنن رو در صبح و شب و یو وجه و ما الخطابه و این چیز آقای امروالغیزم داره رو به همین دو رفیق خودش میکنه و یفزی علیه ما به سرهی یفزی این یفشی و افشا میکنه برای اینها سر خودش رو که اینجا منزل معشوق من بوده من اینجا سکونت داشتن به رهی و مکنون صدره مکنون یعنی مستور و پوشیده دلش رو یعنی راز پوشیده دلش رو و رو داره برای اونها میکن. میگه وسیغه اطول عمر ازا سدرت من رفیقن لرفیقی وسیغه امر اگر سادر بشه از یک رفیق برای رفیق دیگر او من ندن ند یعنی همتا جمعش همش انداد تو قرآن آمده از یک همتای لندهی برای همتای دیگه لم یرد به ها ال ایجاب و الزام اراده ایجاب و الزام باش دیگه نمیشه چون معنا نداره و این نما و به ها فقط اینجا التماس خاصه التماس محض یعنی خواهش درخواسته ها؟ چیز غیر از این نیست محضون ایتماس خب این هم دیدیم بیاییم سال مثال هشت مثال هشت باز از آقای امرور تو همین معلقه خطاب میکنه به شب یه قاعده ای ما داریم که اگر امر نسبت به غیر زول اغول باشه میشه تمنی چی گفتم؟ امر نسبت به غیر زول اغول باشه میشه چی بگید؟ تمنی مثلا ما میخوایم بازی کنیم میبینیم آسمون عبری شد میگیم ای آسمان یا مثلا کاشتیم یه چیزی رو میخواییم میبینیم آسمون باید بباره ها بهباره ما حاصل بدم بگیم ای آسمان ببار خب ای ای آسمان ببار یا عیتو هستما ام تری خب این کتاب به آسمان یا ای اسب من نمیر ای اسب من مودو ای اسب من به پرواز در یعنی چی؟ یعنی ای کاش تو این طور خطابه به غیر زو العقول میشه چی بگید تمنی آرسو حالا نگاه کنید چی میگه و بال آقای ام الدول گفته الا آهای ایه اللیل الطویل آی شب بلند شب فراغ بوده که هم بلند و هم آزار دهنده و تاریک یعنی یا انجهت ریوت آهای شب بلند انا آهای انجله انجله یعنی این کشف باز شو صبح شو به صبحن متعلق به انجله الان جلی به صبحن آهای شب بلنده نمیخوای صبح بشید صبح شد بعد میگه ومل اسباح و به هم سلی گرچه صبح کردن تو بهتر از شب بودنت نیست حالا اون تیکه توضیح میده شاهر سر انجله به شب میگه شب بلند صبح شد یعنی کاش تو صبح شد خطاب به غیر زول اغول میشه چی چی گفتیم؟ تمنی آرزو نگاه کنید اگر شاعر تو شعر یه چیزی رو بخواد خب بعد اونی رو که میخواد انگار از سر قفلت خواسته بعد عقلش سرش میاد میگه که نه من نمیخوام اینو. باز شدین تو اون بحث ترمه پیش هم گفتن به این میگن صنعت رجوع. اینجا شاعر تو قسمت اول چی میگه میگه کاش تو صبح بشید. بابا شب، ایش شب، دیتاری که خسته شدیم کاش تو صبح بشید. بعد برمیگرده میگه و یعنی من اسباق و به امسل. یعنی به امسل من ظلامک. که صبح کردن از طرف تو امسل یعنی افزل از شبت نیست خود شب تموم بشه رنگ آسمون از سیاه به سفید تب میشه قصه های ما که تمام نمیشه گرچه روز بودنه بهتر از شب بودنه نیست چرا تون غم و قصه سر جایه خودش این بشه صنعت رجوع ابتدا یه چیزی رو خواسته که شب صبح شه بعد گفت نه بابا چه فرق میکن حالا تو صبح هم بشی باز غم و قصه سر جایه نگاه کنید تا این الانجلا اول که یکو رو بخونم مال اون چیز قفا امرون لر اسنیل بل بقف. از ذکر را یعنی از تذکر این من توضیح دادم با. و سخت و لوا و دخول و هومل موازه اسم جوهاییست یقول رفیقه به دو رفیقش میگه قفا بیستیل و اعینانی بل به تذکر حبیب فارغتوهو و منزلن خرشتومه بیستید و کمک کنید با من گریه کردن به خاطر اینکه یاد آوردم حبیب و معشوقی رو که ازش جدا شدم و منزلی که از او خارج شدم و هاذ المنزل بین هاذ المواصل و اون منزل بین این مواضع در سخت لباس که بین در خود گفت ال انجلا الانکشاف ول امسا الافصل یقول لیتک میگه ای کاش تو لیتک ایها الليل تنکش کاش تو شب باز شدی صبح بشید و تنحی زلام که انعیدی تنحی یعنی تو بقید و دور کنی تاریکی خودت از جلو چشم من لعرا بیاز صبح تا من نور صبح ببینم از روشنهایی صبح ببینم ثم عاده عاده یعنی رجع خود برمیکرد میگه این درخواست بی خوده چه فرمون نیسه رو رجوع داره تو این بید سمه آده فوال و مل اسباهو به افضله من که اندی گرچه صبح کردن پیش من بهتر از شبه نیست چرا؟ فعیمی زیرا فعیمی اغاسی من همومی نهارن ما اغاسیه لیدن قاس های یعنی دست و پنجه نرم کرد درگیر شد میگه زیرا من دست و نرم نمی درگیرم با کم و قصه ها من همومی نهارن در روز همون مقداری رو که اغاسیه با باش در شب درگیر آه هیچ فرقی نکرده اما قصه هایی که تو روز باش درگیریم همونهایی هست که شب هم باش درگیر بودیم حالا چون خسته شدیم گفتیم شب تو صبح شد خب این هم گفتیم چون خطاب به غیر زبل اغول هست تمنیست حالا کنید توی متع و امروالغیس ایزن فیلم مثال سامن لم یعمور لیله اهم نمی... نمیکنه کنه شب رو و لم یکل فوشی و اونو تکلیف به چیزی نمیکنه چرا؟ لعن لیله لا یسما و لا یوتی چون اهم که نمی اطاعت نمیکنه و این نما ارسل سیغت لهم و اراده به ها التمنیه. بلکه سیغه اهم آورده و ازش اراده تمنی کرد سه تا معنی مجازی دیگر رو میخوام بگذارم به انزمام نموزج ها با قول خودمون باشه که انشالله اول جلسه بعد براتون بخونم درست شد و شما هم حتما مباحث من رو دوره کنید که بحث نهی تکرار این درس است یعنی اون که با قول خودمون خوندیم رو تکرار میکنیم که بتونید به بهترین وجهش یاد بگیرید درست شد معفق و معید و منصور باشید انشاالله در تناه خداوند تعالی و السلام علیکم و رحمت الله و برقا.